أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير موفقا ومعيد ازا الفته هذا نظوله ظاهر انواع لما كانت سيرا مرتبتا بموضوع الحكم الشرعيه فهي متى ما تحققتت سیرتون منها ترتب علیها حکم هش بلا حاجة إلى امزاع و نحوهی وزالکل انها اما به نفسها موضوعن للحکم او موجدتن لفرد حقيقي للموضوع او کاشفتن عن فرد حقيقي له. و الان جمیع تقادیر یکون الموضوع متواجدا علم تحقق سیرته فیترتب علیه حکمه لا محالته این عبارت ازا رو که میبینید در وادی دوم بحث الان وارد میشه ما اقسام سیره رو گفتیم قرار بود اقسام رو که میگیم مناتش رو هم بگیم حالا اقسامش رو گفتیم مناتش رو میخوایم بگیم یعنی چی؟ یعنی ببینید شما اول این بحث رو نگاه کنید الفصل الاول اقسام و سیر اقلائیت این من اینجا براتون یاد داشت میکنم. کتاب هر اول مقدمه داشت یادتون هست؟ در مورد ضرورت و بحث اند سیره برای شما که نبودید بحث های این قوانفر در موقع در مورد ضرورت بحث چه خوبت گردیم و همچنین توضیح برخی اصطلاحات بعد وارد فصل اول شدید گفتیم فصل اول دو تا درس تقسیم سیره به وصف و بحث حجیت سیره یعنی چی؟ یعنی ما میگیم سیره دو جوره سیره دو جور است سیره واقعه در مسیر استنباعات خوشمشری و سیره مرتبط به موضوع سیره مرتبط به موضوع خب حالا ده نت خواهید چون داره کار کار امروز این روز این از سامنه ها چه هم من بینیویسنم سینه این واده اینو دیگه نیازه این کارزه نیست حضور به دوقه سر کلاس اینها رو من کسی بردن از بستا دیگه قیبت حساب آدم استفاده از تلفن همراه و همراه همچنین چطور دستی که تازه کلاس گذاشته بودیم خب ببینیم سیره واقع در مسیر استنباته و جمشیدی مناطش حجیتش یادتون هست چی بود؟ منات حجیت یک دو سه اینا رو لازم کاری پس باید اینا رو به نمیسن منات حجیتش رو برگردید نگاه کنید ببینید چه صرفه ایه خودش آره صرفه بگید به من تا من باز کنم اونجا رو آره نمفرشو شما برگرد چطاب داری؟ چدا حتما خب منات چیه؟ سیزده و چهارده سفته سیزده و چهارده خب کشف ها سیره یقینا صحیح باشد یادتون می‌گفتیم سیرها دوی در همه احصار و همه از اینا ممکنه بگیم که سیره صحیح هست، خب صحیح باشد دو شارع امره به تبعیت سیره کرده باشد چهار شارع امزا، امضا کرده باشد مناهر با سه تا سه تا برای اثبات حجیت سیره در مسیر حکم شرعی گفتیم اینا رو اروس کار داریم وارد اینا خانیشون اما دومین قسم سیره مرتبط به موضوع خود این سی رو, رو بود دو سه اسم اول سیره که نفسه سیره به نفسه موضوع موضوع هرچو است دو سیره که محبه موضوع است سه سیره که خاشف هست موضوع است فرده بود. حالا این سیره موضوع مناتش منعات و چیست؟ یعنی سیره که مثلا خودش موضوع حکم شری است یا سیره که موضوع شری را برای ما می سازد مثلا لباس مختص کفار را سیره ای برای ما ساخت خب این سیره به چه شرطی به چه مناطی به چه ملاچی حجت است یا سومی سیره که برای ما کاشفه مثلا سیره بر خیار غابنه کاشف از این شد که مردم و عقلا شرط دارن در بین خودشون یه شرط ارتکازی دارن اون شرط اینه که مال باید تو معامله در هر هم باشه مساوی باشه خب این سیره از این چشفی کرد حالا این سیره آیا حجت یا نه به چه مناطی میتونه حجت باشه اینو می‌خوام بررسی کنیم. مناط سیره،, سیره که در مسیر حکم هست رو قبلا گفتیم. اون سه تا مناط سیره که در موضوع است رو هم الان می‌خوام بگیم. پس عنوان بحث ما این هست. منات های حجیت سیره مرتبط بالموضوع چیست؟ از ارافته هاذا نقلو این ازا هرفتر در حاله اینجا هست این ازاع... ازا ازا هرفتر اینا باید یه مدت نیوشته بشه اینا رو بشهد اساطیق دیگه نا استفاده کنم او رنگ شد ازا هرفتر برای این منات حجیت سیری مرتبط به موضوع هست خب حالا قبل از اینکه بخونیم یه لسی خودمونم فکر کنید روش پیش مطالعه حتما فکر کنید آ کوسری و دوستان دیگه یکی از روش های خوب خودمون سود اینه که قبل از کلاس پیش مطالعه کنید خودتون رو متن فکر کنید چطور فکر کنید اصل موضوع رو وقتی فهمیدید جریان چیه بحث چیه کتاب ببندید نخونیدش کتاب ببندید خودتون فکر کنید چه جوری میشه اینو حلش کرد الان سوال روشن شد براتون من خواستم همین سوال مشخصیه. سیره ای که خودش موضوع هش میش نیست مثلا چال گفته است که از سیرت اوقلائیه در مورد فلان چیز را حفظ کنید سیره حسنه را حفظ کنید مثلا این سیره وقتی محقق شد آیا حجت؟ روش فکر کنید دو ما سیره داریم بر این که نقدراهج اون کاغزه مالیت داره شاره هم گفته که اون چیزی که نزده اقلا مالیت داره اون نزد من هم مالیت داره خب حالا این سیره الان حجت یا نه روش خود فکر کنید یا سیغمی اون سیرهی که کاشف بود از اون به وستیده اون خیار قبل ها کاشف از شرط بود در نزده اقوام خب این سیره ها حجت هن حجت بودنشون به چه مناتیست زمین که الان نمیخوام بخواهیم بخواهیم که حجت هستن یا نه؟ الان میخوایم اگر قراره حجت باشه به چه معیاری حجت است؟ نظرتون چیه؟ موسیقی نام این ستا به بیرنس موقع نوش آره موسیقی نام خودشون یه جور منات میسه منات؟ یعنی چی مناتی؟ مناتی سنه موضوع یا موضوع یا مرتبط به موضوع ببینید از همه اولی شروع کنیم خودمون فکر کنیم وقتی شاره میگه سیره حزنه شما در مورد مثلا الان سیره شده در ایران که اول مهر یه چند روز مونده به مهر یک جریانات ایجاد بیکنند به این انسان هایی که به خانواده هایی که آسیب پذیرن نمیتونن تأمین کنن لوازه ما تحریر بچه هاش رو براشون جمع میکنن و میخرن کیف و دفتر و مداد و این الان یه سیره است. خب شاره میگه این سیره حسنه سیره است. این را نگه دارید خب شما به من بگید ببینم الان این سیره منات رو جهتش چی میتونه باشه یعنی الان ما برای چی چالش کنیم این حجت اصلا باید چکار کنیم؟ <تصفيق> باید چکار کنیم؟ تو, تو قبلیان نیاز به تو نیاز به امضایی، امر ای یا اثبات صحت خود سیره بود. اینجا چی؟ جا. شاره میگه آقا این سیره رو می‌بینی چه شما دارید؟ این خوبه حفظش کنید. خب حالا چکار کنم؟ جا جا. هیچ،, هیچ کار نمیخواد خب خود سیره این نیاز به برای حجیتشانه نیاز به کاری نیست خودش حجته دیگه مناتش خودشه تو همین صورت اول نوع اول منات خودشه سیره محقق شده شاهر هم میگه سیره را حفظ کن خب چیکار کنیم دیگه این نیازی به جله حجیت توی نداره که پس سیره مرتبط موضوع حداقل قلی نوع اولش که خود سیره موضوع بود این نیازی به بس حجیت نداره منات نمیخواد چی نمیخواد سیره محقق موضوع سیره که می اومد برای ما ایجاد می کرد محقق می لباس شغلت را لباس مختص را ظهور را آه آه آره وقتی محقق میکنه موضوع رو شاره منتظر این موضوع محقق شد سیره این محقق کرد بعد چکار میکنه؟ کنه اتوماتیک میاد روش حالا مراج کار کنه برم بگم این سیره منات حجیت از چیست رو اینا خب دیگه سیره محقق کرد موضوع لذا به نظر میرسه این سیره ها با اون سیره های تبلیه فرق میکنه اینا نیازه به مناط حجیت اینا ندارن خود سیره حله دیگه یا سیره سرخون اونی که کاشف بود یه سیرهی کش میکند از موضوع تا موضوع رو برای ما کشف کرد برای ما خوش به هم میاد رو موضوع میاد. تا کشف کرد یعنی نیازی به بحث حجیت روینا نیست اما تو سیره هایی که برای استنباد استفاده میکردیم اون فرق میکرد ما میخواستیم بگیم آجان سیره داریم بر کار. سیره داریم برای این که مثلا مردم ریششون رو نگر میدارن پس شرعن ریش دگه داشتن مصدحبه یا واجبه ترگوی اینو از کجا میگی؟ ببینین سیرهی چه ما رو میخواد به حکم شرعی برسانن سیره رو ببینیم حکم رو از سیره استنبات کنیم این نیاز به حجیت داره شارعه باید امضا کنه بگی بله این سیره رو امضا میکنم پس حکمش ثابت میشه اما اون سیره ای که برای ما موضوع ساز است یا موضوع رو کشم میکنه یا خودش موضوع شرعی است این آخه دیگه کاری نمیخواد دیگه دیگه. این نیاز به بودیت هم این به نظر نیسته که این باشه اگر نظر دیگه این دارید بگید حالا ما به عنوان اینکه یک تابل از بحث خواستیم این, این رو روش خودمون فکر کنیم اگر شما نظر دیگه دارید بگید تابل دارید این حرف رو؟ تایید هم بخونیم ببینیم دیگه همینه یا نه ها هیچی که هیچی نمیگید پس خود همین امضاست دیگه سکوتها رزاها همینه دیگه خیلی خواه میفرمد که ازا عرفت هازا نقولو هازه الانواع او. هازه الانواع یعنی کدوم انوا اینا رو بگید تا عبارت گنج نباشه اوائل ساله باید که اینا رو توضیح بدیم بگیت. هازه الانواع یعنی کدوم یعنی این سسیره مرتبط به موضوع آره آیه از قدر کار به کجا رسیده که همه چی رو باید توضیح بدین من بعضی از دوستان میدونم خیلی لما کانت سیرن اینم جمع بخونید سیرن مرتبطتا به موضوع حکم شریع فهیه آقا ملاج ملاج بخواهیم میگه ملاک ملاج لازم نیست فهیه متاما تحققت سیدتون منها ها تبالایی ها حجم هست یا هر موقع متاما یعنی هر وقت تحقق پیدا کرد از ای از آنها مترتب می شود بر آن حجم شرعی بلا حاجت ال امزای و نحوی چون اینو خودش موضوع قرار داده و. یعنی که میخواد خلاصوش رو بده به این نیاز به امضای باشه نیاز دارید در واقع خودش نوشته اینه اولین من لازم میاد اونجایی آره دیگه موضوع هر میخواد باشه الان خمر حرام است خب این خمر وقتی موققت شد من باید بگم آ این امضا میخواد نمی چی چی میخواد خمر موققت شد هر میاد دیگه حالا این جنب سیره موققت شد موضوع تکمیل شد اتوماتیک تام موضوعه تکمیل شد، اتوماتیک حکم میاد. چون میگم موضوع نسبت به حکم خودش یه حالت علیت داره. وقتی موضوع اومد خود به خود حکمش اومده، نیاز به امضاینا نیست. در دست آره، تحقق موضوع آره. این دیگه با جهل شاره نیست که. تحققه موضوع خودش الان با سیره محقق آره این هم یه بیان کنه آره اما حکم دستش آره و حدود و سغور موضوع هم دستش آره وزاله که یعنی این ترتب و عدم حاجت به امتاو این حرف ها ها اما به نفسها موضوع للحکم شرعیه خودش به نفسها موضوع او موجدتان لفردن حقیقی للموضوع این هم همون نوع دوم چه گفتیم یا به تمامه یا به جز موضوع او کاشفتون این هم نوع سوم هم فردن حقیقین له و الان جمعیه تقادیش بر هر سه تقدیر هر سه نوعش یکون الموضوع متواجدن موضوع محقق هست حاصل هست وجود پیدا کرده است، اند در تحقق سیرته ایلو با موضوع چه حاصل شد فیا ترتب علیه حکم لا محالتا. روی اون یترتب و علیه حکم بندازید چون موضوع نسبت به حجم به منزله علت برای معلولش است خیلی خوب اگر میخواد یه توضیح فارسی بنویسید، در کنار اون ها ذهل انوا این پاراگراف رو توضیحشو بنویسید بنویسید توضیح توضیح این پاراگراف. انوا استقانی سیره مرتبط به موضوع انوا سیره سیرهای مرتبط به موضوع نیازی به امضا اشاره ندارم خلیاتش کی پس منات حجیتش چی میشه؟ دنبال منات بودیم میگه منات حجیت چی میشه؟ هیچی منات خودش منات نمیخوند خودش حجیت حاضر به نسبت علل امزاه امزا نمیخواد اما یه سوال دیگه یه طلبه سر کلاس بوده میگه آقا جم سیرهای مرتبط به موضوع همین ستای که سنوی گفتیم باشه امضا نمیخواد اول محقق شد حکمه ولی این سیره رو باید چشم کنیم که معاصر زمان امام بوده یا نه اینم نمیخواد خوب بیاد دوباره بررسی کنیم الان سیری داریم که معاصر زمان امام نیست همین الان به وجود اومده مثل همین سیری چه ارس کردم. قبل از ایت برای خانواده نیازمند اصباب برود ایمان وسایل اینها تهیه بشه یا قبل از ما لوازمون تحرید این الان زمان پیانبر نبوده چون اون زمان مهماه اینا به عنوان سال تحصیلی اینا نبوده که ولی شاره میگه این سیره سیره خوبیه اینو حفظ کنید خودش به نفسه موضوع خب الان این نیاز به اثبات معاصرت داره نه خودموندانی میگه اصلا معاصرت نیست شارع میگه همین سیرتون که معاصر معصومم نیست همینا حرفش که خب هر دیگه پس ظاهرا نیازی به معاصرت و این حرفا هم نیست یا سیره های محقق موضوع محقق موضوع یک شو فرض کنید مثلا همون لباس کفار ما میدونیم که زمان پیامبر این لباس کفار نبوده یا آلت القمار نبوده مثل بیلیارد الان بیلیارد الان آلت القمار در زمان محسومین نبوده که ولی الان آلت القماره شارم گفته آلت القماره حرامون بیعه ها حرامون شراح ها حرامون حفظه ها حرامون نگلش داری بهش نگاه کنیم، خب چکا کنی این معاصل نبوده پس این حجم نمیاد معاصل نبوده حجم نمیاد یا میاد آلت القماره و چون میاد دیگه محاصر نیست تا پس ببینیم لازم نیست یه مثال دیگه ظهور حرفاز بگیم آقا این لفظی که در قرآن میبینید این در زمان نزول قرآن ظهور در این نداشت محاصر نبود این الان سیده ولی این است که این یه معنایی دارد که این در زمان نزول قرآن نبود این محاصرت لازمه تا این سیده حجت باشه لازم نیست. یه بار دیگه میگم، یه بار دیگه میگم. ببینید ما بگیم در مورد لفظ خاصی از قرآن. مثلا انما وليكم الله ورسوله والمؤمنون و, و الذين امنوا. اون ولی، الان یک ظهوری پیدا کرده الان در اثر جدید. فرض کنید در قرن 21م ولی ظهور پیدا کرده است در معنای دوست. و این سیره باعث این ظهور شده سیره است که متأخره میگون که داره محقق موضوع دیگه پس در قرآن هم ولی به منی دوسته حجت در همین معنا میشه درسته؟ محاصر امام نیست محاصر زمان قرآن نیست این سیره حجته؟ اصالت نه در نظر بیگه رو نه اصالت ادم نه بله جایی بود که شک داشتیم اینجا شک داشتیم. من میدونم این بعدن ایجاد شده دارم میگم این سیره بعده یقین داریم نه. این, آه. این آه. سیره نه. برای قرآن حجته نه, نه. خب اینو چه گفتی حجت نیست اینجا اگر میخوایم سیره که ظهور سازه از حجت باشد باید معاصب زمانه قرآن باشه پس تویا نسبت به قید معاصرت باید حواسمون جهن باشه در مورد سیره هایی که محقق موضوع یا جز موضوع هستن میگیم تو خیلی هاش نیاز نیست مثل همون لباس مختص و عرض رائج و آلت القمار و, و اینها اینا نیازی به محاصرت نیست اما تو بحث ظهور محاصرت نیاز است میدونین چرا؟ چون موضوع حکم شرعی در اونجا ظهور زمان خود صدور کلام است پس باید سیده ما معاصل با هم و صدور کلام باشه. پس این رو داشته باشه. ببینید باید رو. یعنی اون عدم نیاز به مناط. عدم نیاز به امضا. به نسبت اینل امضا، نسبت به امضا ما نیاز به چیزی نداریم. جلی چیزی نمیخوایم. و اما معاصرت hazard الانواع من اصیار لزمان صدور النص فهیه غیر محتاجت الی احرازها آقا جان معاصرت این انواع سگانی سیره با زمان صدور روایت و آیل نص فهیه غیر محتاجت الی ها. نیازی به احرازش نیست این گویا با توجه به همون آلت القمار و لباس مختصینا داره میگه لمن الفقیه لایستن دو اله آفی عملیت استنباد در عملیات استنباد که استفاده نکرد در تحقق موضوع استفاده کرد بل المهم تنگی و موضوع الحجم به سبب سیره موضوع حجم به سبب سیره محقق و منقه بشه این رو لذا معاصرت لازم نیست یعنی آقا جان شما با این سیره که حتی معاصرم نیست معاصر زمان و نیست با این سیره وقتی موضوعت محقق شد دیگه معاصرت لازم نیست که روش این جمله رو میخواهید بنویسید بنویسید یعنی تا اینجا ای کارها یعنی معاصرت سیره در تحقق و تنقیه موضوع دخالت ندارد تمام میگه نه و حاضر یتوقف احیانا احیانه بعضی وقتها در بعضی اینها همین تنقیه موضوع رو این تنقیه این تنقیه موضوع بعضی وقتها متوقف است بر احراز معاصرت محاصرت سیره با زمان سودور نه چه اون موقعی که موضوع حجم مقیده به زمان صدور باشد و هو ما ازاکانم موضوع اول حجمه مقیدن به که از زمان یه بس اینجا نگاه کنیم به میگیم که حجم این است و چه چیزی حجت هست میگه زواهر الفاظ موضوع ما اینه زواهر الفاظ حجت این درسته این درسته زواهر ال الفاظ حجت این درسته درست نیست درست ما دقیق نیست باید بگیم زواهر الفاظی که در زمان صدور نست داریم و الان قرآن رو بخونید متن قرآن با الان ما هم ظهور داره ولی این ظهورش بعضیاش الان ایجاب شد یعنی ظهور الانه خب به در ظهور زمان 1400 سال پیش حجته به خاطر همینه که ما تو بحث چیلیت فهم قرآن میگیم آجا شما قرآن رو میخواید درست بفهمید باید ظهورش در زمان خود نزول قرآن رو به دست بیاری. برای همون عرب ها رو هم به دست بیاری. یه ایرانی مثلا قرآن رو میشتید چه ظهوری براشتاش اونم مهم نیست یه عرب اونم تو مکه اونم 1400 سال پیش از قرآن چی میفهمید اونو باید پیدا کنید لغت اون زمان صرف اون زمان نهب اون زمان بلاغت اون زمان محیاره پس در اینجا اون زمان اون زمان برید موضوع مقیده به اون زمانه خب اینجا پس ما لازم داریم اینجا روشنه دیگه و حاضر یتوقف و احیانا علا احراز معاصرت سیره این هم معاصره بخونید با به مفاعله دیگه فتح بدید معاصرت سیره زمن صدور نس و هو ما از موضوع الحکم مقیدن به زارک زمان که من اینجا بلتونم نوشتم و من امثلتهی حجیت و ظهور خطاب شارعه البته تنها مثال که تو نماز همه ظهوره سایر سیره ها حالا باشه این کتاب زرنگی کرده گفته من امثلته هی حجیت و ظهور الخطاب که جا باشه برای یه وقتی مثالی پیدا کردیم که موضوعش مقیده به زمان عیمه هست این جا داشته باشه و مثال انگار همون ظهور حجیت و ظهور خطاب شاره منجهت ان موضوع حجیت هی هو از زهور مکایده به زمان صدور نص. آن موضوع هدیتیهی موضوع هدیت ختابة شاره. هو از زهورل مکایده دو به زمان صدور نص. خیلی خوب فصیل اگه جوریه اینو این جوریه نتونی نمیپرسی میمین مانه حرف ما رو خراب نمیکنه. و سیرت و منقت و موضوعه لا این موضوع است محقق دیر نوع دوم بود دیه تمام موضوع هم مشخص بود. لابد و انت معثرتا این دی چون این اسم فله این م انتکون معثرتن لظالش از زمانه خ خب ا اینجوری و به فی مقام استنباطه الا احراز حازه المعاصره این به خاطر این بود که خود حجیت ظهور مقید به زمان صدور نص است این موضوع ما حجیت ظهور زمان صدور رو می‌خوام و الا سیره‌ای که موضوع ساز هستن به طور کلی نه نیازه به امضا دارن نه نیاز به معاصرت دارن تمام شد منات حجیت سیره های مربوط به موضوع رو هم گفتیم منات سیره های مربوط به استنباد حجم رو همچه قبلن گفته بودیم اون ستا دیگه تمام شد این بحث حالا آخر بحث ها یه کار خوبی میکنه خلاصه بحث رو بگیه ما حسن بحث یا بگو حسیل اطول بحث فکر میکنم چکیده بگیم خوبه چکیده بحث در فصل اول این است. تنقسم و سیرول اقلائیتو به شکل رئیسی این الا قسم سیره های به شکل کلی به دو قسم تقسیم می شود. رئیسی به نظرم هم به معنی کلی باشه. خدا حفظش کنه شد. الاولا از سیرال واقعت و فی... خب سیرای و اولی اون بود که تر... در مسئله استنباط دومش مرتبط به موضوع از سیرال واقعت و فی طریق استنباط الحجم شرعی بله خب و یهتاج و فقیحل تمسخ که به هازن قسم فی عملیت استنباطه به سه چیز الا تحصیل دلیل علا حجیته و قد عرفت ان نهازت دلیل یجبو آجام شما برای استمباط حجم از سیره باید حجیتش رو اثبات کنید و قد و شما هم دانستی که نعازت دلیل دلیل حجیت یجبو انیتکف به تحقیق منات حجیت فیها منات حجیت رو در دلیل حجیت باید داشته باشید و هو احد و امور سلاسته منات یکی از اون سه است ببینید اولت رو حل کنم عبارت رو روشن کنم برای تو. میگه اگر سیره رو میخواید در مسیر استنبات استفاده کنید باید دل حجیت داشته باشه اون دل حجیت رو چه میخونیم همین بحث بردی ما ورود به بحث دل اون دل حجیت رو ببینید متکفل منات حجیت هست که منات حجیت هم سه تا چیز بود یا صحت خود سیره یا امزا یا امری از شاهه یا امزای شاهه این سه تا مناد باید تو اون دلیل دلیل حجیت باشه این اول اول, اول از ثانی از سیرال به موضوع حجم شرعیه چه هم یلا خوندین ولا یهداج و فریق فی هاز القسمه الى تحصیل دلیل از حجیت لأن الموضوع متواجدن عند تحقق حاضر سیر فی یرد تبو این باب تفیلو یرتبو علیه حکمهو لا محالته حکمش رو بر او ناچار لا محاله این ناچار پیاده می کند نیازی به هیچی نداره مگر احراز معاصرت در مورد ظهور الفاظ دیگه هیچی غیر از این نمیخواد. بسیار خوب این از فصل اول که بحثاش بحثای مهمی بود بعضی جهاش یه ذر شروع خلوب بود حتما باید این رو چند بار مرور کنید تا مسلط بشید. حالا بعد یه مروری هم برای شما ما کمک کرده باشیم انجام بدید انشاءالله فردا یک امتحانی از این قسمت میریم موافقید؟ یا فردا زوده؟ زوده زوده؟ چی خوبه؟ شنبه آیا ما اگه این نظر شما چیه؟ شمبه خوب بازه برای شما فرد اگه نمیخونی فرقی نمیکنه نه بخونی اگه بخوای بخونی جمعه شنبه, چ... شنبه یا فردا چه جمعه لازم شنبه یا شنبه شنبه این قسمت ها رو از اول تا همین تا الان رسیدیم حتما مطالعه کنید و یه جوری بخونید که من دیگه خیالم راحت شد که ادامه بدیم بحث احسار رو شما یاد گرفتید یه جوری بخون که دیگه کار تمام بشه نزارید برای آینده نمرش هم شاید دخیل نباشه ولی من نمراتون رو میبرم یه جلسه با محسولین مدرسه با هم صحبت موید یعنی این آقا نمرش میدید زخیله در نمره نهاییتون نیست ولی آبروتون بستگی به این نمره داره یعنی خودتون تنظیم کنید دیگه. تنظی اون اینجا، بالا اینجا نیست، اون مرکز. هم. آره. که شفاش باید از همین باشه دیگه. ایمات رو خوندید، اونم تو رسائل رو بخوید تا من بدید. زهرا نمی‌خوام، رساله بعداً. منم که برای دیگه, دیگه هستش که ممکنه پیش بیاد دیگه. خب حالا تازه بعضی از مراجع مخالفت خودشون رو با این برنامه جدید حوزه و هم چنان اعلام میکنن. غزالی میگه این نمیتونه باشه. محکمله دیگه شما تو الموجز و مزفر خوندی دیگه. البته. الان خود رساله ناقصه. خود رسائل از نیمه دوم سول دیگه دیدیدید؟ برای شما به نظرم بد نیست چون شما رسایلم خوندین الفاظ امرونی و الفاظ براش مفیده ببینید دیگه کاربردیه اینا من ما به نظرم بعد نشه بسیار حالا ببین سوال الفاظ سانی یک صدا وقت به فرستید اللهم صل علیه الفست و سانی رو یه سی ثانیه وقت میدم یه نگاهی بکنید اون دو سه خطه اول رو ببینید چی میخواد بگه الفست و ثانی سی ثانیه آره؟ هم یه نگاهی بنداز ببینم چی میگه شرفتید چی میگه؟ آه. چی میگه؟ عدله حجیت سیره اغلایه رو بردست بکنه آها ببینید سیره اغلایه اگه میخواید بگید حجتون املا باید به ادلش نگاه کنید دیگه همینجا ما میخوایم ادله حجیت سیره اغلایه رو چکار کنیم بررسی کنیم حالا یه سوال. آقا چا من همه همین همین دردقه پیش نکفتیم سیره اغلایه نیاز به دل حجیت ندارد. نه حوجت میخواد نه معاصلت میخواد خب چی خب خب دیگه پس چی میخوایم الان بعد از ادله حوجت یعنی چی؟ خوبه خل... عسکری بیا تو بس بیاد تو این بحث همگانی باید باشه سیره حکم ساز حکم ساز این اصطلاق خودت ها <تصفيق> خوبه آیه معیدی بیا تو باز به ما افتخار بده نظر بده آیه کسری مگه همی الان نگفتیم سیره نیاز به دلیل حجیت ندارد نیاز به معاصرت هم ندارد الان این الفس ادله عدله حجیت سیره ها خب این که پایبند به حرف خودش نمون که مطلبش واضحه خیلی واضحه آقای از هم اشاره کردیگه این سیره های مرتبط به موضوع نیاز به دلیل حجیت نداره اما سیره های مرتبط به حج سیره که میخوایم استنباط حجیت کنیم اون باید حجیت داشته باشه اگر اون حجیت دن داشته باشه ارزشی نداره که مثل خبر واحده خبر واحد باید حجیت داشته باشه تا بتونیم ازش, ازش احکام رو استعمال کنیم لذا اینجا پس روش حتما داشته باشید عدله حجیت سیره اقلاییی چه دسم اول بود در استعمال لازم داریم خب این سوال اول سوال دوم الان عدلهی چه میخوایم حجیت سیره رو باهاش اثبات کنیم های مایدیم بیا تو این بحث توش دنبال چه خواهیم بود تو اون عدله فرض کنید تو اون عدله من یه آیه آوردم میگم آقا جان این آیه رو میبینید عوضا بالله من شیطان رجیم توش تو این آیه نوشته که سیره های اغلایی استنباط حجم حجت است تو این آیه چی باید باشه که بتونه حجیت این سیره رو اثبات کنه سوال من خوبه ها یعنی اینو الان جواب بدید مطلب براتون جا افتاد از که درم ببند نواسی ما پرد نشه سوال هم دوباره پرسن عدل حجیت برای سیرهای و چه که میخواییم استعمالات حکم رو از اون انجام بدیم این توش چی باید داشته باشه تا حجیت رو بتونه برای ما ثابت کنه چی رو یا او کسی وارد این همه توضیhdادی اسم نداره این؟ همه اوغلا چی باشه؟ شیعه؟ نه اون متشرع است. اونو بعدن ان شاء الله. فعلاً شیعه سنی کار نداره. کافرم هم این چیز که از خریگاه این اسم نداشت شیعه همگانی که تخته نشند و این ها. یه ای اسم نداشت؟ خوبه باستیشان. چی؟ های <تصفح> <تصفح> از خوبه ها با کلاس همراه بودی. از اول خوب بوده. ولی یه لبه باید ببری بالتر. یه لبه ببری. خب ببینید آماجان تو جواب این حرف اینه. عدلهه. گوش کنید چقدر آسونه جواب. ادله حجیت سیره باید توش منات حجیت سیره باشه <تصفيق> دیدید منات حجیت چیه آقای کسری همون چیه دیگه این پایینی سیره موضوع رو اونو کلن بلش کنید اون اصلا دیگه کار نداری الان بس رفت رو سیره های مرتبط به حج یعنی برای استعمال حج منات حجیتش یکی از این یا باید خود سیره یقینا صحیح باشه خب حجت دیگه یا باید از شاره اعلام شده باشه که آبین به این عمل کنید این حجت هست. این معزل هست. این منجز هست. از این موذر است این منجز از این الفاظ اینو اگر تو اون آیه پیدا کردید خب میشه حجت دیگه یا سومین باشه امضای شاره رو از تو دلیل بتونیم براتون نشون بدیم هر کدوم از این سه تو اون دلیل بود یعنی معناته حجت سیره تون تو دلیل هست سیره حجت میشه اصلا علت اینکه که اونجا مناتها رو برای توش مردیم برای این بود که تو همین امروزی به درد خواهد خور مناتها رو باید توش ببینیم این هم سوال دوباره من که سوال آسانی بود خب این من داره کنیم حالا بخونیم دیگه سوال نمی پرسن. بخونیم یک خود اینجا رو ببینیم تو این بله چار پنگ دقیقی وقت داریم تمهیدان الفس و ثانی عدلت و حجیت سیر الاغلائیه دلیل حجیتش چیست؟ که توضیحاتشو عرض کردم احتمالاً میدیم فعلا احتمال میدیم که ادله حجیت میتونه قرآن باشه روایتی باشه امام بفرماد که آقا جام هر چیزی که سیره هست حجت هست یا هر چیزی سیره هست ما طبقش حجم میکنیم خب این حجت عقل چی؟ میتونه حجیت سیره رو برای ما اثبات کنه؟ عقل؟ ده ده ده. فیلن حدس میزنید. داریم فکر میکنیم. آرامی میتونه اجماع چی؟ اجماع برای ما سیره رو حجیت کنه. آجماع هم داریم باشه. خخ خیلی، تمهیدو. اول یه تمهید، یک آماده سازی برای این بحث عدله. این تمهید تا کجا تو میکشه؟ صفحه بیست و چهار نه اون در, در, در این یه جوریه ببینید انگار ببینید تمهید الان دو تا نکته داره نکته در طول اولا تمهید دیگه که تا صفحه بیست و سه همه اون دیگه درسته خب خب. نکته توها اولاش تا صفحه 23 نقطه ثانیه از 23 شروع میشه اسناف ادله اسناف ادله صنف اول صفحه 24 صنف دو صفحه پل اک پل اک پل صفحه یکه سنف دو صفحه یکه. سنف سه صفحه 32 بعد اونو هر خودون خودش بحث داره دیگه اینا رو بحث میکنه و تا آخر همین فصل ادامه پیدا میکنه پس گویا کل این فصل همین تمهید میشه حالا نمیدونم واقعا نویسندگان منظورشون هم همین بوده که کل این فصل تمهید باشه یا نه به نظرم یه مقدار دقت نشده تو اسم بزاری و عنوان بندی این فصل خوب حالا تمهیداً ان البحث شاید موضوعش از تمهید همین دو خط باشه نمیدونم ان البحث ان ادله حجيه سيار الاقليه من اهم مابحثا فانهو في فل... مقام دليل حجيه سيار خیلی مهمه شما مظفر هم نگاه کنید این ما امضای شاه رو از کجا حاصل کنید یا بدونیم شاره دستور داده به این سیره عمل کنیم از کجا حاصل میشه به چه دلیلی میشه امضای شاره رو اثبات اصلا سیره اصل بحثش همین اثبات امضای شاره منات سوم لذاش من میگه از ی تعلق بهی اصل ها و تحدید و دایره اصل اعتبار سیره و اینکه دایره سیره تا چه حد هست سیره چقدر میتونه برای ما برد داشته باشه چه مقدار میتونه حجت اثبات کنه این بستگی به همین بحث داره ولا بده قبل از دراست الادلته من الالتفات الى دو نکته تقنید. بلا این برنامه من تمهیده بذون مشکل تنظیم هست قبل از اینکه دراست کنیم این ادله را بررسی کنیم ادله را به دو تا نکته التفات کنید نکته اول تقسیم سیره به عامه و خاصه هست سیره عامه و خاصه و توضیح سیره خاصه نکته دومم انس اسناف ادلیه هر جهتی سیده چه انشالله فردای رو بازدش بیشیم با سلامت کجاست؟ سلامت الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله و الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله